از گروه جوان و فرهنگ به نام خدای محرافین آن یگانه منان سلام قصه ها و افسانه‌ها میراث فرهنگی هر قوم و ملتی رو نشون میدن اونها ارزش‌های سنتی و زمینه فرهنگی و اجتماعی ملت های مختلف رو منکس میکنند. همه ها و افسانه‌ها ها از حقیقت دارن این حقیقت مبارزه دائمی خیر و شهر و در واقع مبارزه بیوخفی روشنایی با تاریخیه. افثانه ای رو از کشور ویتنام براتون نرمی کنم به نام افسانه شهادت دادن مگس برگرفته از کتاب گاو بیرنگ نویسندگان نینا یافه و استیف زایتلین با ترجمه ای از مجگان شکری امیدواریم شنیدن این افسانه ویتنامی براتون سرگرم کننده و لذت بخش باشه. روزی روزگاری در کشور ویتنام کشاورزی زندگی میکرد که خیلی زحمت کش بود اون شب و روز به سختی کار میکرد تا بتونه خرج خانوادش رو تأمین کنه سالها گذشت تا خوش که از راه رسید و زمین مرد افثانی ما دیگه محصولی نداد اون که هیچ پسندازی نداشت مجبور شد برای تأمین خانوادش از کسی مقداری پول قرض بگیره بنابراین به دهکده هم همجوار رفت تا از مردی به نام تونگ که کارش پول قرض دادن به مردم بود مقداری پول بگیره مرد نزد تونگ رفت و گفت آقای تونگ امسال اصلا محصولی نداشتم مقداری به من پول قرض بدین سال آینده موقع برداشت محصول پول شما رو پس میدم تونگ در جواب گفت باشه من این پول رو به تو میدم اما اگه در وقت مقرر شده پول و سود اونو پس ندی باید عنوان جریمه خونه و مزرد رو به من بدی قبوله؟ مرد که که دیچوری جز این نداشت شرط تونگ رو پذیرفت و تونگ وقتی سکه ها رو می شمرد و به اون می داد زیر لب قرولند می کرد اما از ته قلب خوشحال بود اون میدونست که زمین و مزرعه دیگه ای به دست آورده چون اون قبلا هم از همین طریق مزرعه و ثروت زیادی به دست آورده بود تونگ مرد رباخار افسانی ما مال و ثروت زیادی داشت اما همیشه سعی میکرد با کلک و خوق بازی ثروت بیشتری جمع کنه سال کشاورز افسانه ما به سختی کار کرد و شب و روز روی زمین زحمت کشید. همسر و فرزند کوچیکش هم به اون کمک کردند تا اینکه زمان برداشت و فروش محصولشون فرا رسید. ولی اون با فروش اون محصول نمیتونست همه پول مرد رباخار یا همون تونگ رو پس بده. روزها گذشت و چند روز بیشتر به وقت مقرر شده باقی نمونده بود کشاورز به اتفاق همسرش به دهکده‌های دور و نزدیک رفتن تا شاید بتونن کاری انجام بدن و پولی به دست بیارن اما فقط پسر کوچیکشون رو توی خونه گذاشتن تا مراقب مزرعه باشه تونگر باخار که برای پس گرفتن پولش بیتاب شده بود به بزره مرد کشاورز رفت. پسر کوچیک خانواده کشاورز تو خونه نشسته بود و داشت با سنگهای دم حیات بازی کرد. تونگ بشنسیک شد و گفت آی پسر پدرت کجاست؟ پسر کوچولو نگاهی به تونگ انداخت و پرسید با پدرم چیکار کار داری؟ تونگ گفت من اومدم پولم رو پس بگیرم پسر کوچولو. پسر گفت آها پس تو همون آقای تونگ رباخاری همونی که به مردم کلک میزنه و پول تونگ با عصبانگت کلام پسر رو قطع کرد و گفت سکت باش بچه حتما این عراجیف رو اون پدر گدا و بدگولت یادت داده اون کجاست پسر گفت پدرم نیست مادرم هم نیست تونگ گفت اونا کجا رفتن؟ پسر جواب داد پدرم رفته تا درخت های زنده رو ببره و درخت های مرده رو بکاره مادرمم رفته تا باد بفروشه و با پولش ماه بخره تونگ با تعجب به پسر نگاه کرد و گفت این پرت چیه که میگی پسر منظورت چیه؟ پسر بچه همونطور که به تونگ نگاه میکرد به آرومی همون حرفها رو تکرار کرد تونگ رباخار که به شدت عصبانی شده بود چوب بامبویی رو که در دست داشت جلوی صورت پسر گرفت و گفت من همین جا میشینم و بالاخره اون پدر بدگوگت میاد اون وقت من میدونم و اون ساعتی گذشت خبری از اومدن مرد کشاورز نشد تونگ که دیگه خسته شده بود به پسر کوچیک کشاورز گفت یه بار دیگه ازت میپرسم پدر مادرت کجان؟ پسر جواب داد منم گفتم که پدرم رفته تا درخت های زنده رو ببوره و درخت های مرده رو بکاره مادرم هم رفته تا باد بفروشه و با پولش ماه بخره تونگ که دیگه حوصله ی حرف های بیمعنای پسر رو نداشت با عصبانیت گفت بگو منظورت از این عراجیف چیه؟ بگو وگرما بد میبینی پسر بچه دوباره با آرونی همون حرف رو تکرار کرد بالاخره مرد رباخار گفت من باید بفهمم که منظورت از این حرف چیه؟ آسمون و زمین رو شاهد میگیرم گیرم که اگه منظورت رو بگی پولم رو از پدرت پسته می گیرم. پسر با خوشحالی گفت واقعا این کارو می تون با لحن به ظاهر مهربون گفت بله قول میدم پسرم خب حالا حالا بگو منظورت از این حرفا چیه؟ پسر با همون خوشحالی گفت واقعا همه پول رو به پدرم میبخشین؟ تونگ که دیگه داش کنافه میشد گفت گفتم که بله بله بله پسر پرسید همه پول رو میبخشید؟ همه رو؟ تونگ با عصبانیت فریاد زد بله بله همه پول رو میبخشم حالا بگو منظور چیه؟ پسر گفت ولی آقا زمین و آسمون که نمیتونن حرف بزنن و شهادت بدن من, آه آه من وقتی معنای حرفم رو میگم که یه موجود زنده رو شاهد بگیریم نه آسمون و زمین رو تونگ رباخار که دیگه تاقتش تاخ طاق شده بود برای اینکه خشم خودش رو مهار کنه چند لحظهای از بهسر فاصله گرفت و به فکر فرو رفت. چند دقیقه که گذشت تونگ رباخار که حالا کمی آرومتر شده بود به نزد پسر مرد کشاورز برگشت و گفت که من باید برای یه پسر بچه فسخلی شاهد زنده بیارم پسر گفت بله آقا همینطوره ولی باید بگم که من الان دیگه هشت سالمه تونگ خندگه کوتاهی کرد و گفت <محن> ولی انگار زبونت بیشتر از جست روشت کرده پسر جان. پسر گفت بالاخره میخوایی معنیه حرف های منو بفهمی یا نه. سری تکون داد و گفت البته البته که میخوام. پسر گفت پس به فکر یه شاهد زنده باش چون من هیچ وقت قبول نمی کنم زمین و آسمون شاهد حرفهای من باشن. تونگره باخار همینطور که داشت فکر میکرد یه دفعه یه مگس درشت اطراف صورتش چرخید و بعد یه راست نشست روی چوب بامبویی که اون در دست داشت تون با خوشحالی گفت بفرما اینم یه شاهد زنده پسر نگاهی به مگس انداخت و گفت ها خیلی خوب برحال مگس بهتر از هیچ چیزه تونگ گفت خب حالا که شاهد زنده را قبول کردی بگو ببینم معنای اون حرفا چی بود پسر گفت کدوم حرفا تونگ با عصبانیت گفت همون بریدن درختان زنده و کاشتن درختان مرده همون فروختن باد برای خریدن ما دیگه پسر تکون داد و گفت آها آه حالا میگم به شرطی که تو هم سر قولت، همون که گفته بودی هیچ پولی از پدرم نمیگیری، بنی سر قولت باشی. تون گفت: هستم، هستم، دیگه کلافه شدم. بگو من حرفات چی بود؟ پسر گفت: بله. پدرم رفته تا درختها رو ببره و با چوبونها برای همسایمون نرده بسازه. تا بتونه پولی به دست بیاره و مقداری از خرز شما رو بده میبینی که اون درخت های زنده رو میبوره تا چوب های مرده بکاره تونگ به فکر فرو رفت و بعد پرسید خب پس مادرش چی؟ گفت مادرم اون هم رفته که باد به رو بفروشه تا برا چراغمون روغن بخره به نظر شما این کار فروختن باد برای خریدن ماه نیست تونگ از شنیدن حرف های اون پسر هشت ساله سخت به حیرت افتاد و با خودش گفت هیفه هیفه که این پسر کچلو با این همه هوش و استعداد تا چند روز دیگه بیخونه و آواره بشه هیفه و بعد بر روی پسر لبخند زد و از اونجا دور شد و به طرف خونش رفت روز بعد دوباره به سراغ مرد کشاورز رفت و طلبش رو خواست و گفت اومدم پولم رو پس بگیرم چند روزی از موعد مقرر شده گذشته میدونی که توافق کرده بودیم اگه در وقت مقرر پول و سود اون رو پس ندی باید مرمان جریمه خونه و مزرعت رو به من بدی مرد کشاورز تایید کنن گفت بله بله میدونم ولی ولی چند روز دیگه به من فرصت بدین. تونگ با عصبانیت فریاد زد. فرصت؟ نه نه نه نه نه نه نه. دیگه وقتی برات نمونده. تو همین الان باید تمام پولم را پس بدی و تف قرارمون مزه و خونت رو هم باید به من بدی. به بعد ادامه داد. زود باش. زود باش پولم را پس بده. اردو کشاورز با خواهش گفت آخه تونگ من از شما تقاضا میکنم شما لط کنید و یه فرصت دیگه به من بدین من گل میدم قول میدم تونگ با خوار کلام اونو قطع کرد و با خشم گفت فرصت بی فرصت پولم رو پس بده به بعد فریاد زد پولم رو بده <تصفيق> در این موقع پسر کچولوی مرد کشاورز صدای پدرش و تونگ رباخار رو شنید و به طرف اونها دوید و گفت پدر پدر شما نباید هیچ پولی به اون بدین آقای تونگ به من قول داده بود که قرضش رو پس نگیره اون،, اون نمیتونه زیر قولش بزنه و بعد همه چیز رو برای پدرش تعریف کرد ولی تونگ رباخار هرچی رو که پسر گفته بود انکار کرد پسر بچم حرفش رو تکرار کرد و همه چیز بالا گرفت و بالاخره تصمیم گرفتند موضوع رو با قاضی در میون بگذارن خلاصه مرد کشاورز و پسرش به همراه تون باخار نزد قاضی رفتند مرد کشاورز و پسرش به همراه تونگر باخار نزد غازی رفتند و هر کدوم حرفهای خودشون رو برای قاضی بازگو کردند و قاضی با اونها گوش داد چند دقیقه بعد قاضی از پسر بچه برسید خب پسر جان تو گفتی که این مرد قول داده پولش رو نگیره درسته؟ پسر بچه گفت بله بله جناب قاضی قول داده بود قاضی گفت خوب ما چجوری میتونیم بفهمیم حرفی که تو میزنی درسته آیا شاهدی داری پسر بچه جواب داد بله قربان یه مگس بزرگ شاهد ما بود قاضی با شنیدن این حرف با ناراحتی فریاد زد یه مگس چی میگی پسر؟ حتی یه بچه از تو کوچیتر هم این حرف بیهوده رو نمیزنه پسر بچه به پدرش نگاه کرد بعد رو به قاضی گفت قربان اون مگس تمام مدت پیش ما بود و روی بینی آقای تونگ نشسته بود با گفتن این حرف یک دفعه تونگ رباخار از جا پرید و گفت چه حرف مسخری؟ اون مگس که روی بینی من نبود روی روی چوب بمبوی من نشسته بود این بچه و دیگه حرفش رو ادامه نداد و ساکت شد قاضی خندید و گفت همونطور که این بچه ثابت کرد حتی موجود بسیار کوچکی میتونه یه شاهد باشه آقایتون تونگره باخار گفت علی آقای قاضی من قاضی اجازه صحبت به تونگر رو نداد و گفت دادگاه به تو حکمی کنه همونطور که قول داده بودی از گرفتن پول چشموشی کنیم بعد به این ترتیب بزرکچی با پدرش به خونه برگشت و سال سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردند. زمانی رسید که پسر کوچولو بزرگ شد و صاحب همسر و چند فرزند گردید اون همیشه به فرزنداش میگفت روزی این مزرعه مال شما میشه ولی بدونید که این دارایی رو فقط به خاطر شهادت یه مگس دارید شیخی که افسانه ای از مردمان سرزمین ویتنام بود. به نام افسانه شهادت دانل مگس برگرفته از کتاب گاوه بیرنگ نویسندگان نینا یافه و استیو زایتلینگ با ترجمه از مشگان شیخی. کرن ای شاعر روس گفته بدون تصورات شگفت انگیز افسانه ها علم فیزیک و شیمی هر دو به حال رکود در می مدن. زارفزان کاری بود از نویسنده زینت سالح بور ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوستی صداوردار علی بخشی تایی کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانی دیگر بدرود